افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ. به نام خدا سلام اندر این شب ای کریم بنییاز سوی تو آورده ایم روی نیاز در شب دلتنگی از برای مولای من علی علیه السلام داستان کتایی رو براتون نقل می به نام مرد ناشناس که گویای گوشی از دنیای مهر و توفت و تواضع امیر مؤمنان علی علیه السلام هوا گرم بود و مسلمانان نمازشان را خوانده و مسجد را ترک کرده بودند حضرت دست بر آستان کبریای خدا برداشت چهرهش دنیای از خلوص و توازع بود لحظهای با فروتنی در برابر عظمت خداوند سر تعظیم فرود آورد و ساعتی بعد که سر از سجده برداشت چشمان سیاهش خیس بود و نگاه نافذش اش به خالق یکتا را به صد زبان بازگو می‌کرد. قنبر غلام وفادار حضرت در به انتظار مولایش نشسته بود. حضرت آرام از جایی برخاست و با وقاری خاص از در مسجد خارج شد. قنبر نیز بدون دنبال ایشان راه افتاد. قدم‌های حضرت آرام بود و نرم. حضرت و قمبر وارد کوچه تنگ و باریکی شدند صدای گریه چند کودک شنیده می حضرت شد قدم های حضرت کند شد حضرت لحظه ایستاد و چهرهش در هم کشیده شد. غنبر به تندی پرسید مولای من چه شده؟ حضرت فرمود این صدای گریه کودکان از کجا می آید؟ بعد با کنج کاوی نگاه نگران خود را به اطراف انداخت. غنبر چند قدمی به جلو برداشت و نگاهش را از دیوار کاگلی کوتاهی که فاصلهیه چندانی با آنها نداشت بالا کشید بعد با سرعت به عقب برگشت و به مولا گفت مولای من صدای گریه از اینجا میآید و با دست به پشت دیوار کوتاه اشاره کرد حضرت فرمود آنجا چه خبر است انبر با اطمینان گفت مولای من این خانه متعلق به بیوه زنی است که سه کودک یتیم دارد جرفای وجود حضرت از شنیدن این حرف از غم و اندوه لبریز شد و قدمهایش به ناگهان به طرف دیوار کوتاه گاهگلی شتاب برداشت آنچه حضرت دید غم و اندوهش را دو چندان کرد سه کودک لاغر و پریده رنگ در کنار ظرفی که بر شعلی آتش بخار می کرد و اشک از چشمان معصومشان جاری بود زن که مادر کودکان بود به آرامی در حال جا به جا کردن هیزمهای آتش بود چهره رنجیده و خسته به نظر می رسید قنبر رو به حضرت کرد و گفت مولای من می بینین؟ در ظرف جز آب چیز دیگری دیده نمی شود مولا سری به تکان داد و آهی بلند از سینه مبارکش برآمد غمبر گفت این کار کار هر روز این زن است او کودکان گرستش را با این ظرف آب سرگر می کند تا کودکان در انتظار آماد شدن غذا به خواب روند کمی بزرگ قلب حضرت را لرزاند چشمانش را به آرامی بر هم نهاد بر محاسن سفید چنگ انداخت و زیر لب این گونه نالید وای بر من وای بر من حضرت با شتاب از آنجا دور شد قمر نیز با عجله به دنبال ایشان به افتاد چند لحظه بعد حضرت وارد خانه خود شد در حالی که عرق از سر و صورت مبارکش سرازیر شده بود حضرت همسرش فاطمه را مشغول عبادت خداوند یکتا دید حسن و حسین نیز معصومانه در گوشه‌ای به خواب نیمروز فرو رفته بودند مولا با تندی تمام گوش و کنار خانه را جستجو کرد و بالاخره کیسه آرد و مقداری خرما یافت آنها را بر شانه‌های سترگشت نهاد و همین که خواست حرکت کند قنبر با دستپاچگی جلو آمد و سینه به سینه ی حضرت ایستاد آنگاه از ایشان خواست تا اجازه دهد کیسه ی آرد و خرما را او هم کند ولی حضرت که فکر می کرد این کار وظیفه خود اوست و تا اینجای کار هم در ادای وظیفش کوتاهی کرده دست قنبر را به آرامی به عقب پس زد و با شتاب به طرف خانه کودکانه گرسنه قدم برداشت صدای گریه کودکان همچنان از کوچه به گوش می رسید، بر جلو رفت و ضربه آهسته به در صدای گریه کودکان به یک بار قطع شد زن در رابر روی آنها باز کرد و وقتی چشمش به دو مرد ناشناس افتاد با تردید با آنها نگاه کرد، همبر پیش دستی کرد و گفت، ای زن، این مولای من امیر مؤمنان علی علیه السلام است که برای کودکان گرستند مقداری آرد و خرما آورده است. زن با ناباوری زیر لب زمزمه کرد. امیر مؤمنان خلیفه مسلمین؟ و نگاه زده و ناباورش بر کیسه که بر دوش از رد بود خیره ماند. مولا با لحنی آرام و مهربان به زن فرمود، آیا اجازه می دهید داخل شویم؟ زن در حالی که برغ شادی در چشمان ناباورش موج میزد سری به علامت تستیخ تکان داد و با خوشحالی راه را برای ورود حضرت و غنبر باز کرد. همه جا سکوت بود و گویی پرده ای از فقر و نداری بر تمام حیات کاکلی خانه کشیده شده بود حضرت کیسه آرد و خرما را در گوشه این کودکان به دامان مادر پناه بردند و با چشمان معصومشان همه چیز را از نظر گذراندند نگاه مهربان مولا در صورت تک تک آنها چرخید بعد آرام با آنها شد و با مهری پدرانه دست نوازش بر سر آنها کشید و با لحن بغزاروری فرمود فرزندانم آیا مرا خواهید بخشید که اینقدر دیر به سراغ شما آمدم؟ کودکان سکوت کرده بودند و زن در بلا تکلیفی آنها به زبان آمد و گفت خدا به شما عجر بدهد بیش از این نمی توانستم آنها را با این ظرف آب فرید دهم. آنگاه عشق شوق از ششمان زنجاری شد. قلب حضرت کمی آرام گرفته بود و حس شوق در وجودش افکند. زن با شرم به طرف کیسه آرد و خرما رفت حضرت او سبقت گرفت و فرمود: اجازه دهید من وزیفم را تا به آخر انجام دهم. آنگاه از زن خواست تا وسایل پخت نان را آماده کند زن حاج و مانده بود و نمی باور کند این مرد که خلیفه است قصد دارد برای کودکان گرسنه نان بپزد حضرت دوباره از زن تقاضا کرد که وسایل پخت نان را به او بدهد زن با شرم گفت ولی شما مولا او را به سکوت دعوت کرد زن بناچار وسایل مرد نیاز حضرت را آماده نمود و حضرت آستین لباسش را بالا زده و مشغول آماده کردن خمیر نان شد زن در گوشه ای استاد و نظارگر حرکات مولا شد مولا علی علیه سلام با شوق و علاقه بسیار مشغول کار شد نگاه خمر به دستان پین بستیان حضرت که در حال ورز دادن خمیر بود خیره ماند او در دل از داشتن چنین امیری بر خود بالید چیزی نگذشت که بوی نان تازه تمام فضای حیات خانه را پر کرد. کودکان گرسته که از بوی نان گرم و تازه به شوق آمده بودند با نگاه تشکرآمیز به طرف مولا گام برداشتند حضرت با دستان مهربان خود تکه از نان تازه و خرما را لغمه کرده و در دهان آنها گذاشت کودکان با ولع تمام لغمه های نان و خورما را از دستان حضرت میبلیدند و در دل از خود میپرسیدند راستی این مرد ناشناس کیست؟ کار پختن نان که تمام شد نگاه مولا به زن که در گوشه ای و هنوز عشق شوق از چشمانش جاری بود افتاد به آرامی قرص نانی را برداشته و به طرف او تراز کرد و فرمود بگیرید میدانم تو نیست زن با خوشحالی و شرم قرص نان را از دست مبارک مولا گرفته و در دامان خود نهاد نان هنوز گرما داشت اما زن هنوز گرمای مهر و محبت و لطف الهی را بیشتر از گرمی نان احساس میکرد. کودکان که حالا دیگر سیر شده بودند در چشمانشان عشق و در دلهایشان اونس و الفتی کودکانه به آن حضرت جای گرفت آنها شادی گرد حضرت میچرخیدند و لحظه ای از ایشان دور نمی‌شدند. زمان به سرعت می گذشت کمبر نگاهی به مولایش علی علیه سلام انداخت و گفت آقای من مولای من قصد ندارید به خانه بروید و استراحت کنید؟ حضرت با تعجب پرسید استراحت؟ به ادامه دادند من کارهایی مهمتر از استراحت کردن دارم غمبر آنگاه لبخند زنان به طرف کودکان رفتند و ناگهان در مقابل آنها زانو خم نمودند و دستانشان را بر روی زمین گذاشتند. همه با تعجب به حرکات عجیب ایشان خیره ماندند و نمیدانستند قصد مولا از انجام دادن این حرکات چه می تواند باشد؟ مولا از کودکان خواست یک به یک بر گرده او سوار شوند و با او بازی کنند. زن با دست پاچگی جلو رفت و به حضرت گفت یا امیر شما نباید برای خوشنودی کودکان من شعن و منزلت خودتان را زیر پا بگذارید مولا به آرامی فرمودند شعن و منزلت من در نزد خدا در گروه این گونه کارهاست خود از جای برخاست و یکی از کودکان را از زمین بلند کرده و برگرده خود نشاند. حضرت کودک را گرد هیا چرخاند. کودکان با حرکات خاصی که حضرت انجام میدادند همه به خنده افتادند و چنان غرق بازی و خنده شده بودند که گویی این مرد ناشناس پدر واقعی آنها بود. ساعتی گذشت خورشید در حال غروب کردن بود و زمان زمان خداحافظی حضرت کودکان را یکا یک بوسید و دست محبت و نوازش بر سر همیان ها کشید و به طرف در خروجی قدم برداشت قمر نیز به دنبال ایشان روان شد خانه غرق سکوت و آرامش شده بود کودکان گرد مادر حلقه زدند و از او پرسیدند مادر این مرد مهربان چه کسی بود؟ مادر در حالی که به نقطه نامعلومی خیره مانده بود پاسخ داد فرزندانم او امیر مؤمنان علی علیه السلام بود کودکان به دستان پرمهر صدای گرم و مهربان و به چهره نورانیان حضرت می اندیشیدند و کوچکترین کودک با نگرانی از مادر پرسید مادر آیا او امیر مؤمنان باز هم به خانه ما خواهد آمد؟ مادر تبسمی کرد و دست نوازش بر سر فرزند کوچک خود کشید و گفت آری فرزندم آری او دادرس یتیمان و پناه بینوایان است او باز هم به خانه ما خواهد آمد برقشادی در چشمان کودکان موج میزد. و صدای شادیشان از دیوار کوتاه کاهگلی به بیرون از کوچه تنگ و باریک رفت و کمی بعد عطر خوش ازان مغرب در فضای شهر پیچید اللهی. تو را سوگند به نماز آخر علی در مسلاه عشق دلهای خسته ما را با مرهم کرامت خود درمان فرما و در این ماه مبارک رمضان زبان من را به وصف علی علیه سلام بکشا علی گنجینه اسرار ایزد علی یک تا دور دریای سرمد به وقت جنگ چون شیر شرربار به گاه لطف چون ابر گوهربار این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور، اجرا مهران دوستی، صدابردار مشید محمد ملکی و تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا داستانی دیگر بترود.